این داستان تبر نقره ای یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون روزی از روزها هیزمشکن فقیری بود که از صبح تا شب زحمت میکشید و کار میکرد تا بالاخره کمی پول جمع کرد اون یه پسر بیشتر نداشت روزی پسرش پسرشو صدا کرد و گفت پسرم تو تنها فرزند منی پولی را که با زحمت و عرق ریختن فراهم کردن مال تو میشه. امیدوارم یاد بگیری که اونو به بهترین شکل مصرف کنی و وقتی من پیر رو از کار افتاده شدم بتونی حامی من باشی. با این امیدها پسر رو به مدرسه فرستاد تا زیر نظر معلمات درس بخونه. ولی در پایان دومین سال تحصیلی به علت بالا بودن حزینه تحصیل پول پدر به پایان رسید و دیزم شکن به اجبار از پسرش خواست که ترک تحصیل کنه. پدر با اندوه فراوون به پسرش گفت بیشتر از این نمیتونم پول تحصیل تو بدم. پول دیگه برام باقی نمونده. فقط کفاف نان روزا نمونو میده. و بس. پسر گفت پدرجون ناراحت نباش. هرچی تا حالا یاد گرفتم کافیه. به آموزش بیشتری هم احتیاج ندارم. پسر مدتی بیکار در خونه موند. یکی از روزها پدر ازش خواستش به جنگل بره و کمی هیزم تهیه کنه که به بازار ببره. پسر گفت باشه با هم میریم و من کمکت میکنم. پدر پشیمون شد و گفت نه پسرم کار دشواریه. تو به کار سخت عادت نداری و نمیتونی کمک کنی. از اینا گذشته من فقط یه تبر دارم و پول ندارم یه تبر دیگه بخرم. پسر گفت خب تا وقتی که من برای خودم بتونم یه تبر بخرم از همسایه‌هایی که قرض می‌گیرم پدر رفت و از یکی از همسایه‌ها تبری رو به امانت گرفت سپیده دم روز بعد پدر و پسر با هم به جنگل رفتند جوان با جدیت کار می‌کرد و شاداب و سرحال به پدرش کمک می‌کرد وقتی ظهر شد هیزم شکن صدا زد پسرم بیا بشین نهارمونو بخوریم. پسر هیزوم شکن خودش خودشو برداشت و گفت شما استراحت کنید. استراحت براتون لازمه. من اصلا خسته نیستم. کمی میرم داخل جنگل و همینطور که به آشیانه پرنده ها نگاه میکنم غذامو میخورم. پدر گفت کار احمقانه اگه به جای استراحت توی جنگل راه بری اونقدر خسته میشی که نای کار کردن نداری همینجا کنار من بمون پسر به حرف پدر گوش نکرد و راه جنگل رو در پیش گرفت چون آشیانه پرنده ها زیاد بود مرتب به این طرف و اون طرف میدوید. دوید میخورد می خورد و عرق می ریخت اون مسافت خیلی زیادی رو رفت تا اینکه به درخت بلوط کهنسال و عجیب و غریبی رسید. تنه این درخت اونقدر زخیم بود که اگر پنج مرد دورش میستادن و سعی میکردند دستاشون رو به هم بدن، دستاشون به هم نمی رسید. پسر با تعجب ایستاد و بعد گفت: لابد پرنده های زیادی روی این درخت لانه می همینطور که فکر میکرد و بزرگی درخت و تحسین می کرد به نظرش رسید صدایی میشنبه. دوباره گوشش و تیز کرد و صدای خفه شنید که می گفتفت بزار بیام بیرون بزار بیام بیرون. پسر دور و نگاه کرد ولی چیزی ندید. به نظرش اومد که صدا از زیر زمین میاد. بالاخره با صدای بلند گفت. صدا از کجا میاد؟ صدا جواب داد من اینجا هستم زیر ریشه های درخت بلوت بزار بیام بیرون پسر شروع کرد خاک زیر ریشه درخت و کنار زدن این کار رو با دقت ادامه داد تا اینکه یه بطری پیدا کرد اونو جلوی نور گرفت و نگاه کرد چیزی شبیه یه قورباغه داخل بطری بود و سر و صدا می کرد بزار بیان بیرون، بزار بیان بیرون پسر بدون اینکه که زنی ببره در بطری و باز کرد ناگهان ابری در هوا پخش شد و در عرض چند دقیقه به قولی مبدل شد که قدش به نیمی از ارتفاع درخت می رسید قول با صدای ترسناک به جوان گفت آیا میدونی پاداش این کاری که کردی چیه؟ قول فریاد زد خدمتتون عرض میکنم پاداش تو اینه که گردنت قطع بشه. جوون گفت: اگه از همون اول میگفتی میذاشتم توی اون بطری بمونی و پی کارم میرفتم. اما با وجود این تهدیدا سر من باید رو تنم بمونه. آدمای دیگه‌ای هستن برای اونا نقشه بکش. قول فریاد زد: فکر میکنی بعد این همه سال که در بطری حبس بودم چیزی به نام ترحم در من باقی میمونه؟ به اندازه کافی مجازات شدم. حالا نوبت انتقامه. من سیاره مقتدر عطارت هستم که منو آزاد کردی. پس این منم که گردنتو میزنم. پسر جواب داد. حالا چه ای داری؟ منم باید مطمئن بشم تو همون موجودی هستی که داخل بطری حبس بوده. فکر نمی کنم بتونی دوباره خودتو اونقدر کوچیک کنی که داخل اون بطری برگردی؟ اگه بتونی اون وقت باور میکنم که راست میگی و قبول میکنم هر کاری دلت بخواد انجام بدی. قول با قدرت و جسارت جواب داد اینکه کاری نداره و فوری خودش رو کوچیک و باریک کرد و داخل بطری رفت. پسر هیزوم شکن بیدرنگ با چوب پنبه سر بطری رو بست و دوباره قول و زندانی کرد و بطری رو بین ریشه های درخت بلوط کهنسال انداخت. بعد هم راه برگشت و در پیش گرفت در این موقع قول با صدای تره انگیز گفت دوباره آزادم کن دوباره منو از این بطری آزاد کن پسر جواب داد نه تو که منو به مرگ تهدید کردی قول همچنان با صدای بلند تقاضای کمک می کرد اگه نجاتم بدی انقدر بهت پول می دم که تا آخر عمرت بینیاز باشی پسر هیزم شکن گفت تو جنست خورده شیشه داره، میخوای منو فریب بدی، همونطور که دفعه اولین کارو کردی قول گفت، پشت پا به بختت نزن، این بار نه تنها صدمه نمیبینی، از مال دنیا هم بی نیاز میشی پسر وقت این پیشنهادو با اون لحن شنید با خودش گفت باید خطر رو قبول کنم، شاید به قولش وفادار باشه و به هم صدمه نزنه بعد رفت و بطری رو برداشت چوب پنبه اونا درآورد. ابر بیرون اومد و پهن شد و همون قولی که قبلا بود ظاهر شد. قول گفت من به قولم پای بندم، پاداشتو میدم. بعد یه تکه پارچه شبیه نایلون بهش داد و گفت اگه نصف اونو روی یه زخم ببندی بلا فاصله درمون میشه. نصف دیگرش هم اگر روی یه فلز بکشی اون تکه فلز طلا یا نقره میشه. پسر جوون گفت بذار همینجا امتحان کنم. به طرف یه درخت رفت. با تبر به اون زربه ای زد و اونو شکافت. بعد پارچه رو روی اون گذاشت. شکاف از بین رفت و دو تکه چوب به هم چسبید. قول گفت امتحان کردی، دیدی که کارش درسته، حالا موقع خدافزیه، باید از هم جدا بشین. قول از جوان تشکر کرد، جوانم به خاطر هدیه سپاسگزاری کرد و نزد پدرش برگشت. پدر وقتی پسرش شدید برای و گفت، این همه وقت کجا بودی؟ داشتی برای خودت این طرف و اون طرف میدویدی و یادت رفته بود قرار به هم کمک کنی؟ فکر کردم وقتی با من به جنگل بیای مرتب کار میکنی و اصلا خسته نمیشی. پسر جواب داد مهم نیست ناراحت نباش تلافی میکنم. پدر با عصبانیت گفت اینطوری که نمیشه کار کرد. جوان به پدرش گفت پدر جان، کمی حوصله داشته باش. حالا یه ضربه به این درخت میزنم میبینی چه اتفاقی میفته؟ همونطور که با پدرش حرف میزد، پارچه را رو روی لبه تبر مالید. بعد اونو بلند کرد و ضربه محکمی به درخت زد. ولی چون تیغه تبر از جنس نقره شده بود، ضربه چندان کاری نبود. پسر به پدرش رو کرد و گفت، ببین چه تبر ناجوری به ما امانت دادن، شکلش عوض شده. پدر با ترس و دلهاره گفت، چه بلایی سر تبر آوردی وردی، این نتیجه همکاری و کمک توه؟ حالا پول از کجا بیارم به صاحب تبر بدم؟ پسر گفت ناراحت نباش پول تبر چیزی نیست من میدم پدر سرش داد زد مگه خول شدی پولت کجا بود؟ تو که غیر از پول ناچیزی که من بهت میدم پولی نداری هنوز شیطنت دوران مدرسه از مقصد بیرون نرفته تو به درد هیزم شکنی هم نمیخوری در این لحظه جوون به پدرش گفت پدر من میشتر از این میتونم کار کنم. برگردیم خونه و امشبو به خوبی و خوشی بگذرونیم پدر که عصبانی تر شده بود گفت فکر میکنی من مثل تو میتونم برگردم خونه و دست روی دست بذارم و کاری نکنم. من باید تا غروب آفتاب کار کنم. اگه تو دوست داری برگرد. پسر گفت اولین باره که همراهت به جنگل اومدم و راه برگشت و نمیدونم. کمی که خشم پدر فروکش کرد، قبول کرد با پسرش به خونه برگرده. وقتی به خونه رسیدن، پدر گفت حالا برو، اون تبری رو که از شکل افتاده بفروش، ببین چقدر گیرت میاد. ولی یادت باشه، اونو به هر قیمتی فروختی پولش مال همسایه است. جوان تبر رو برداشت و به شهر نزده یه زرگر رفت. زرگر بعد از اینکه اونو محک زد و روی ترازو وزن کرد گفت این تبر چهارصد درهم می ولی من الان انقدر پول ندارم. هر قد داری بده بقیهش باشه بعد. زرگر سیصد درهم بهش داد و صد درهم هم بدهکار شد. پسر به خونه برگشت و به پدرش گفت نزد همسایه برو و بپرس در عوض تبرش چقدر پول میخواد پدر گفت، نرفته میدونم، یه درهم و نیم. پسر گفت، خب تو میتونی سه درهم بهش بدی. درست دو برابر، مطمئنم برای یه تبر کافیه. ببین من پول فراوون دارم، نگران نباش. وقتی که پسر داشت پول تبر رو میداد، یه اسکناس سد درهمی از جیبش تر آورد و گفت، نگران سه درهم پول نباش. ما انقدر پول داریم که دیگه در آسایش و رفاه زندگی کنیم. پدر گفت خدای من این همه پول از کجا وردی؟ پسر شروع کرد به شهر دادن ماجرا در جنگل و اینکه به قول اعتماد کرده و اونو نجات داده و در عوض به این پولها دست پیدا کرده. پسر جوان با این پولها تونست دوباره به مدرسه بره و به تحصیلات خودش ادامه بده. در این حال چون به کمک پارچه هر بیماری رو درمون میکرد اونو پزشک روستا صدا میکردن و بین همه مردم زبان زد شد سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی